همیشه عاشق همین پی و بعد گرین بودن چون همیشه عاشق سفر بوده عاشق بودم هوای که اگر ولشان کنی یک شب در سال را هم زیر سقف خانه خودشان صبح نمیکنند. آدمهایی که مثل آب خوردن چمدان میبندند و راه میافتند یا حتی نمیبندند و راه میفتند، مثل آب خوردن بدون برنامه راهشان را میکشند و میروند به سمتی آدم هایی که بدون اینکه کار خاصی داشته باشند بدون اینکه معموری از بهشان خورده باشد بدون اینکه نمایشگاهی داشته باشند یا به نمایشگاهی دعوت شده باشند یا جشوارهای بخواهند بروند این کار را می کنند آدم هایی که می روند سفر فقط چون فکر میکنند باید بروند. باید بروند سفر و چون اگر نروند سفر ممکن است بمیرند. همونطور که آدم از سرطان ممکن است بمیرد. ولی سفر با وجود همه دلحوری که با همین یک کلمه به جان آدم میاندازد چیز خیلی سالمی است. برای هر آدمی مفید است. چه برای آنهایی که سرطان سفر دارند و بدون آن نمیرند چه برای آنهایی که از سفر مثل سرطان می‌ترسند، و فکر می آدم اگر پایش را از در بند خانش یا شهرش یا مملکتش بگذارد بیرون فوتش یا دستکم ترسش ترسش است ولی واقعا اینطور نیست سفر واقعا چیز خوبی است و واقعا چیز کوفتی است. نمیدانم. شبیه این زن‌هایی است که نمی‌توانی تصویرش را درباره‌شان بگیری. زنهای ساکت مرموز، زن‌های نزشت نزیبا، زن‌های نامعصوم، مرگبار. من جنون سفر ندارم، ولی عشق سفر دارم. سفر با وجود همه دللهور که با همین یک کلمه به جان آدم میاندازد چیز خیلی سالمی است و برای هر آدمی مفید است چون زندگی ملانگیز اما واقعا کوتاه است و از مرگ که بگذریم هیچ چیز نمیتواند به خوبی هیچ چیز نمیتواند به خوبی سفر؟ این رباتم ثابت کنم